از میراث زندگی فرهنگی در سینه پدر بزرگا و مادر بزرگا پیش روی ماست. ما یکی از افثانه که شاید شما هم اونو از زبان پدر بزرگ مادر بزرگتون شنیدید افثانه ایرانی دست تقدیره که خواهیم اون رو برای شما فرهنگ و ادب دوستان هم را نخر کنیم. دست تقدیر برگرفته از کتاب قصه های مردم به گردآوری پژوهشگران پجوهشگدگه مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی با انتخاب ویرایش و تحلیل سید احمد وکیلیان روزی روزگاری تاجری گزارش به شهری افتاد و بار قافلش رو به زمین گذاشت و در کنار شهر اتراق کرد شب شد و تاجر دید که در تاریکی یه نفر سفید پوش آروم از میون قافله گذشت تاجر با خودش گفت ای این که که کی بود ما که توی قافلمون همچی کسی رو نداشتیم نکنه، نکنه دوست باشه اما نه، اگه دوست بود پس چرا به قافل کاری نداشت تاجر همچنان با تعجب رفتار مرد سفید زیر نظر گرفته بود و ذهنش سخت درگیر شده بود تاجر سری تکون داده گفت بهتره برم دنبالش و حکایتو از خودش بپرسم آره اینجوری بهتره مرد تاجر بعد بلند شد و توی تاریکی شب مرد سفید دنبال کرد و با قدم های تند و سری خودش رو به اون رسوند و بی مقدم ازش پرسید ای مرد تو چه ای؟ تو قافل ما چه کار میکنی؟ مرد سفیدپوش به چشم های مرد تاجر که توی تاریکی شب برق میزد خیره شد و گفت من تقدیر نویسم مرد تاجر با تعجب پرسید تقدیر نویس؟ خب توی قافله من چیکار میکردی؟ مرد سفید جواب داد من به قافله شما اومدم تا ثروت تو رو برای پسر ایزم فروش که تازه به دنیا اومده مرد تاجر با شنیدن این حرف اعتراض کنن گفت چی؟ ثروت منو برای پسر هیزون فروش بمیسی؟ این چی؟ آخه من کجا پسر هیزون فروش کجا؟ من... من که از این کار سر در نمیرم آخه من سالی یه بارم گذرم به این طرفو نمیفته چرا باید ثروت من برای پسر هیزون فروش نوشته بشه؟ ها؟ مرد سفید چیزی شیزی نگفت و راهش رو کشید و ره. فردای اون روز مرد تاجر قاصدی رو نزد ایزون فروش فرستاد و گفته هرچه زودتر به دیدنش بیاد. مرد ایزون فروش هم فورا نزد مرد تاجر اومد. تاجر به محض دیدن مرد ایزون فروش گفت ای مرد تو دیروز صاحب پسری شدی؟ مرد ایزون فروش با خوشحالی گفت بله بله من همین دیروز خدا یه پسر کاکرزری به ما انایت کرد و ما از این بابت خیلی خوشحالیم تاجر گفت ای مرد بیا و این پسر نو رسیدت رو به من بده من من فرزندی ندارم و هیزون فروش که انتظار شنیدن این حرفو نداشت کلام تاجر رو قطع کرد و با تحجب پرسید چی؟ پسرم رو به شما بدم؟ این چه عرفیه مرد حسابی؟ مگه میشه؟ تاجر گفت از شدن که میشه؟ میشه فقط یک کمی سخته میدونم ولی من قول میدم اگه پسرت رو به من بدی کاری کنم که تا آخر اون محتاج کسی نشی هرچی بخوای در اختیارت میذارم تازه مطمئن باش با این وضعیت سخت مالی که تو داری پسرت نمیتونه آدم خوشبختی بشه و آینده خوبی نداره ولی اگه پیش من؟ باشه من من آینده اونو تضمین میکنم خلاصه مرد تاجر اونقدر گفت و گفت تا هیزم فروش نرم شد و گفت که باش اون حرفی نداره ولی باید با زنش هم صحبت کنه چند دقیقه بعد هم از خونه مرد تاجر خارج شد و رفت تا با همسرش در این باره صحبت کنه یزون فروش وقتی به خونش رسید ماجرا رو برای زنش تعریف کرد زن گفت مرد ما که از مال دنیا چیزی نداریم این بچه اگه پیش ما بمونه به جایی نمیرسه وقتی تاجر حاضر اونو به فرزندگی قبول کنه این ظلم به بچه که اونو پیش خودمون توی این نداری و بی چیزی نگه داریم مرد گفت یعنی؟ یعنی تو حاضری بچه‌مون رو بدیم به تاجر؟ زن سرید داد و گفت برای تأمین آینده بچه من البته که حاضرم و قرار شد فردا اول وقت مرد هیزون فروش بچهش رو نزد مرد تاجر ببره صبح زود هیزم فروش بچه رو برداشت و رفت خونه مرد تاجر مرد تاجر با دیدن بچه با خوشحالی گفت به به به به چه بچه قشنگی و بعد مقداری سکی تلا تلا و یکیسه یک برنج و مواد خوراکی زیادی به مرد و گفت برو برو و با خیال راحت زندگی کن و مطمئن باش که آینده بچه تزمین و تحمینه مرد ایزان فروش با دست پر به طرف خونش برافتاد از اون طرف هم تاجر به نوکرش دستور داد این بچه رو برمیداری و میبری توی بیابون سرش رو میبری و از خونش توی این جام میریزی و میاری برای من فهمیدی چه گفتم نوکر که انتظار شنیدن این دستور بیرحمانه رو از طرف تاجر یا اربابش نداشت با تعجب گفت ارباب شما میخایید من سر این طفل معصوم رو ببرم آخه چرا تاجر بر سرش فریاد زد این فضولیا به تا نیومده تو فقط به دستوری که دادم عمل کن زود باش نوکر که چاره جز اطاعت نداشت تعظیم میکرد و خواست بره که تاجر تأکید کنن گفت سب کن اگه اگه در این باره به کسی حرفی بزنی با دستای خودم خفک میکنم فهمیدی؟ و نوکر با ترس و لرز سرش رو به علامت تعیید تکون داد و بچه رو برداشت و به طرف بیابون براه افتاد نوکر به وسط بیابون که رسید ایستاد دلش نیومد بچه رو بکشه با خودش گفت آخه آخه من چجوری میتونم سر این طفل معصوم رو ببارم آه چجوری میتونم نه من من من دستم رو به خون این بچه بیگناه آلوده نمی کنم بعد فکری به خاطرش رسید نگاهی به اطراف انداخت از غذا چی از اونجا میگذشت نوکر با تلاش زیاد قوچ رو گرفت و سر اونو برید بعد خونش رو توی جام کرد تا برای اربابش ببره حتما الان از خودتون می پرسین، نوکر با بچه چی کار کرد بله نوکر بچه رو توی شکافی گذاشته و برای اینکه از آسیب حیونای بیابون در امون بمونه در شکاف رو سنگچین کرد و رفت نوکر نزد اربابش برگشت و گفت ارباب بفرمید اینم خون بچه همش رو ریختم توی این جام ملاحظه کنین؟ تاجر خنده ای کرده گفت <تصفيق> آ چه خونه تازه ای؟ خب حالا برو اونو بریز توی باخچه خونه و یادت باشه که در این مورد به عهدی چیزی نگی وگرنه؟ نوکر نوکر کرد کرده گفت وگرنه با دستای مبارکتون خفم میکنی در بابن. تاجر خندید و زیر لب گفت <تصفيق> خوبه خوبه خوبه که این حرف من یادت مونده خوبه و بعد از نوکر خواست و هرچی زودتر خون رو توی باخچیگ خونه بریزه و نوکر هم فورا اطاعت کرد تاجر که دیگه خیالش از بابت پسر هیزم فروش راحت شده بود البته به خیال خودش رفت کمی استراحت کنه و اعلام کرد که فردا قافله رو جمع کنن و راه بیافتن از این ماجره یکی دو روزی گذشت تا اینکه روزی مرد هیزم فروش که دیگه وزش به واسطه کمک مرد تاجر خوب شده بود رفت بیابون مقداری چوب جمع کنه مرد همینطور که مشغول جمع کردن هیزم و چوب بود دفعه صدایی به گوشش رسید به اطرافش نگاه انداخت و دوباره با دقت بیشتری به صدا گوش داد بله صدا صدای گریه یه بچه بود مرد با خودش گفت یهیچ صدای بچه توی این بیابون و شروع کرد به دنبال صدا گشتن این طرف رو بگرد اون طرف رو بگرد تا بالاخره به شکافی که بچه در اون گذاشته شده بود نزدیک شد و فهمید که صدا از همین شکاف میاد مرد جلوتر رفت و با دقت به بچه نگاهی انداخت و در کمال تعجب دید که بچه بچه خودشه فورا اونو بغل کرد و به خونش بود در این مدت بچه ای بزرگ شد و به مکتب رفت و وقتی به چهارده سالی رسید مرد تاجر یه بار دیگه گذرش به اون شهر افتاد ای زنفروش که از اومدن مرد تاجر به شهرشون اطلاع پیدا کرده بود فورا به دیدنش رفت و به اون گفت این مرد این چه کاری بود که کردی؟ چرا بچه منو با خودت نبردی و اونو توی یه شکاف، توی بیابون رها کردی؟ مرد تاجر شستش خبردار شد که نوکرش از دستور اون سرپیچی کرده و بچه رو نکشته بنابراین شروع کرد به توجیه کردن که نه نه باور کنین من بچه رو گم کردم و تمام این مدت چش به راه بودم که یه روزی کسی از اون به من خبری برسونه الانم فقط به همین منظور برگشتن که بچه رو با خودم ببرم آخ نمیدونی در این سالها چه عذابی کشیدم هزار فکر و خیال هزار فکر و خیال مرد تاجر شروع کرد به گریه کردن مرد هیزون فروش که میدونست این حرفا و این گریه کردنها فقط از روی مسلحت و دروغ محزه به مرد تاجر گفت ای مرد اگه یادت باشه ما با هم قول و قراری گذاشته بودیم در مورد, در مورد تأمین وضع زندگی منو مرد تاجر گفت "میدونم میدونم میدونم دونم که وضع مالی خوبی نداری نیزون فروش گفت من در این سالها بچه رو به مکتب فرستادم خیلی براش خرج کردم حالا اگه پول خرج و مخارج این سالها رو بدی پسرم مال تو مرد تاجر مکسی کرد و گفت باش باش باش قبول و دوباره پولی به هیزون فروش داد و قرار شد هیزون فروش فردا اول وقت پسرش رو نزد مرد تاجر ببره. اردو اون روز وقتی پسر ایزون فروش نزد تاجر اومد مرد تاجر فورا نامی به پسر بزرگش که در یک روستای دیگه زندگی می‌کرد نوشت و داد دست پسر هیزم فروش و گفت پسرم این نامه رو بگیر و اون رو به دست برادرت که در روستای مجاوره برسون کار مهمی با اون دارم عجله کن پسرم عجله کن پسر از اون فروش فوراً نامه رو از مرد تاجر گرفت و به طرف روستای مجاور افتاد پسر رفت و رفت و رفت تا اینکه سر چشمه‌ای در نزدیکی روستا رسید و چون خسته بود تصمیم گرفت یه کمی استراحت کنه. از اسب پیاده شد و دست و صورتش رو شست و زیر ساگه درختی دراز کشید و خوابش برد. خب تا اینجای افسانه رو که شنیدین از اون طرف براتون بگم. از اون طرف دختر تاجر که اومده از چشم آب ببره دید جوونی زیر ساگه درخت خوابیده آروم آروم بهش نزدیک شد و خوب که نگاه کردید گوشه پاکتی از پیرهن جوون بیرون زده آروم و با احتیاط پاکت رو برداشت و در پاکت رو باز کرد و خط پدرش یعنی مرد تاجر رو شناخت عجیبه پدرش نوشته بود به محض رسیدن این جوان سرش را ببرید و خاکش کنید دختر که دلش برای پسر سوخته بود و از طرفی یه دل نه صد دل عاشق اون پسر شده بود نامه رو توی جیب خودش گذاشت و نامه دیگه از اول پدرش نوشت که به محض رسیدن پسر دخترم یعنی خودش رو به اون بدین و هفت شبانه روز عروسی و پایکوبی هم و بعد نامه رو گذاشت داخل جیب پسر و کوزش رو پر آب کرد و برگرد جوان از خواب بیدار شد و پرسون پرسون رفت خونه تاجر و بعد از سلام و احوالپرسی پرسی تاجر رو به پسر تاجر داد. پسر تاجر نامره که خون به اون احترام زیادی گذاشت و بعد هم آقیدی آورد و خواهرش رو به عقد پسر هیزم فروش داره بود از اون طرف بعد از مدتی تاجر به خونش که توی روستای مجاور بود برگشت و دید که پسر فروش سر و مر و گنده داره به پیشوازش میاد. تعجب کرد و گفت اه این پسر که زنده است جریان چیه؟ به بعد با پسرش که صحبت کرد متوجه شد که پسر فروش داماد اونا شده و ای دل قافل همه چی برعکس شده ولی چیزی نگفت و دیگه ای کشید که پسر فروش رو از بین ببره چند روز گذشت تاجر نخشه دیگری تا این بار پسر ایزون فروش رو از میون برداره بنابراین رفت سراغ همومچی روستا و بهش گفت من امروز دامادم رو میفرستم که بیاد ازت خاکستر بگیره اگه تو اونو توی آتش دون هموم بندازی پول هنگفتی بد میدم وخه اون آدم سنگدلیه و هر روز دخترم رو به باد کتچ میگیره خلاصه اونقدر در مورد سنگدلی و بیرحمی پسر هیزم فروش به دروغ برای همونچی گفت که همونچی باورش شد و دلش برای دختر تاجر سوخت و قبول کرد که در ازای پول پسر هیزون فروش رو توی آتشتون همون بندسه تاجر فوراً به خونش برگشت و به دامادش یعنی همون پسر هیزون فروش گفت آخ کمرم آخ امروز کمرم بد جوری زمین گیرم کرده کاش میرفتی یک کمی خاکستر داغ از همومچی میگرفتی تا به کمرم میبستن شاید دردم کمتر بشه مرد تاجر شروع کرد به آه و ناله کردن آه کمرم وای کمرم چه دردی داره پسر تاجر که پشت در بود وقتی شنید پدرش به دامادشون گفته که بره به براش خاکستر بیاره برای خودشیرینی فوراً داماد رو به دنبال کار دیگهی روونه کرد و خودش به طرف هموم رفت و قبل از اینکه به پسر هیزم فروش برسه اون به سراغ چی رفت و از اون خاکستر داغ خواست همومچی که چشاش درست نمیدید فکر کرد که کسی که اومد خاکستر داغ ببره همون داماد مرد تاجره بنابراین گفت به چی گفتی؟ جلوتر بیا من گوشم سنگینه پسر تاجر جلوتر رفت و همومچی با یه حرکت قافل گیرانه اونو انداخت توی آتشتون هموم چند ساعتی که گذشت به تاجر خبر رسید که پسرش توی آتشتون هموم افتده و سوخته تاجر با عصبانیت به سراغ همومچی رفت تا اونو به سزای اعمالش برسونه همون چی که دید تاجر داره با شتاب به طرفش میاد با خودش گفت آه بهتره به جای یه نفر دو نفر بکشم وگرنه مرد تاجر منو توی آتشتون همون میندازه. خلاصه تاجر هم توی آتشتون همون افتاد و مال و ثروتش برای پسر هیزون فروش همون جوری که براش مقرر شده بود افثانه ایرانی دست تقدیر رو براتون نقل کردن به روایت کریم الله محمدی کشاورز از کبود گنبد زنجان برگرفت از کتاب قصه های مردم گردآورنده پژوهشگران پجوهشگره مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب تحلیل و ویرایش سید احمد وکیلیان آیا میتونیم قدر گنجینه اساتی رو که افثانه ها بخشی از اون رو دربر میگیرن ندونیم؟ و از اهمیت افسانه در شناخت دوران کهن و آشکاری رموز گذشته قفل باشیم؟ هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله پور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار آسیه همتی، تیه کلنده زهرا عبدالله زاده. دانه تیگر بدرون